لا اله الا الله وحده انجز وعده و نصر عبده في رو نگاه بکنید این شکوه اسلام یک تن بود یک نفر بود اسلام بر حق را نگاه بکنید شرق و غرب زمین رو نگاه بکنید چقدر مسلمان هست هر جایی مسلمان هست و ادنام اسلام بالاست نصر عبده وهزم الاحزاب وحده مشرکینی که یک دست شده بودن بر علیه رسول الله صلی الله علیه و سلم همهشون شکست خوردند پیروزی از ادا الله حج درس عبرت بر این که تو اگر الله رو داری پیروزی، الله رو نداری تو بدبخت خار خوار و زلیلی با الله باش، بندگی کن تا این که بزرگوار باشی نزد الله و الله تو را در این دنیا و آخرتت سربلند و پیروز بکنه. پیروزی رو فقط الله میده. موفقیت رو فقط الله میده. از غیر از الله نخواه الیس الله کافه عبده؟ مگر الله برای بنداش کافی نیست؟ والله الله کافیه اگر الله رو داری همه چیز رو داری. اگر الله را نداری هیچی نداری. مال و ثروت حسابت بلوکه و پر از طلا و پر از دلار واجه والله الله رو نداری تو همیشه احساس فقر و بدبختی میکنی چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمیان من کانت الدنیا همه کسی که هم غمش دنیا باشه جعل الله الفقر بین عینی فقر الله جلوی چشش همیشه میزاری همیشه خودشو فقیر میبین و از دنیا هم الله بهش نمیده مگر به قدر حاجتش مال داره ولی خودش از اون مالش استفاده نمیکنه اون ترش بهره نمیبره اون بچهش بهره نمیبره اون فقیر اون محتاج ازش بهره نمیبره مال گذاشته بعد تو قبر میخوابه با خودش هم چیزی نمیبره قصه هاجر چیه روی کوه صفا چرا بر روی کوه صفا ایستاد حکمتش چیه ابراهیم خلیل الرحمن علیه الصلاه و السلام که الله به بزرگی ازش در قرآن یاد میکنه از وصفاتی نکش ان ابراهیم کانا امته قانتا الله حنیفا خیلی به بزرگی از ابراهیم یاد میکنه ابراهیم علیه الصلاه و السلام در آتشش میندازن الله اون آتش رو برش برد و سلام و خنک قرار میکنه قرار میده بعد الله بهش دستور میده که بره به سرزمین مصر پادشاه مصر هر زن زیبایی را میدید اون زن را شوهرش رو میکشت و اون زنه را صاحب میشد ابراهیم الله برش وحب میکنه که در این سرزمین این امتحان رو باید پس بدی اگر اومدن تو رو بگیرن زنش سرش ساره زیبا بود بچه هم نمیبورد اومدن سربازان اون پادشاه مصر در سپای ابراهیم رو گرفتن و که او را بکشن گفتن که تو چه کاری این زنی گفت که من برادرش قبلا هم گفته بود به ساره که الله به هم گفته که من بگم که برادرتم من برادر دینی نه برادر تنی گفت من برادرشم نکشتنش ساره رو میگیرم میبرم پیش پادشاه پادشاه میاد تجاوز بکنه به ساره دستشو که بلند میکنه به طرف ساره ساره اونجا به الله جل وعلا پناه میبره میگه بار الله به تو پناه میبرم از این ظالم دستش که درواز کرده اون پادشاه دست خشک میشه. هیبت پادشاه را میگیره میگه شاید این زن جدوگره دست به تمماسش میشه که خواهش منو آزاد کن ساره از الله می طلبه. دلش به رح میفته میگدبار الله او آزاد کن آزاد میشه دوباره باز بار دیگر میاد دست و دراز بکن و تف ساره باز هم از الله مدد میخواهد عس الله و کف حده الله برای بنده کافی نیست کی بود اونجا به داد ساره برس؟ الله برسه؟ الله چنین به داده انسان می تو باید الله رو داشته باشی که در اون سختی هم الله به تو رو داشته باشه. تو وقتی که در زندگی حلال و حرام نمیدونی با توققدرید از سختی الله به دادت برسه الله به داده ساره رسید بار سوم دیگه خلاص دیگه من نیت قه بدی بر تو نمی کنم برک تو آزادی فکر نکنم تو انسان باشی. برو که تو آزادی این کنیزم بهش بدید هاجر با این زنه بذار از این سرزمین برن که من از اینها ها دارم می ترسم. ساره به عنوان این کنیزی که الان بهش داده شده می بیاد به ابراهیم خلیل رحمان من که بچه تو ندارم. اینکنیزه منم میبخشم به تو باش ازدواج کن شاید ازش بچه دار بشی دلش به میوفته میفته به اینکه فرزدی نداره بزار. این شوهرش با این زن ازدواج بکنه بچه‌ای داشته باشه نسل ازشون ببونه بعد از اینکه حاجر بچه دار میشه به غیرت ساره هم بر میخوره هرچند که الله جل و علا هم مجد بچه هم بهش میده الله جل و علا از ساره به ابراهیم اسحاق میده و از حاجر اسماعیل الله جل و علا نه به خاطر غیرت ساره به خاطر حکمتی که از قدر داشته دستور میده که همسرت حاجر با اون طفل بچه اسماعیل رو بلند کن بیا به این سرزمین مکه نزدیکای اون مقام ابراهیم جای پای ابراهیم شما اگر مثلا 20 انی سال قبل اومده باشید چه زمزن پله هایی داشت میرففتید پایین چهزم زن همونجا پایین تو سحن حرمه. الان هم همون جا صاب طبقه پایینه من نمی بینید تو سح حرم نزدیک همون مقام براهیم. اسم را آنجا میذاره بچه ن حال آنجا میزارره کنار خونه خدا میره روی کوه صففا میه نگاه بکنه چ قفله ای کسی بیاد غذای آبی داشته باشه. کسی نیست میاد پایین از کوه میده جایی که چراغ سبز. میدویم. ما به پاس اون یادواره هم میدویم. و اون ذکر را میگیم. رب بغفر وارحم اینک انت العزو الاکرم. بر روحا ببخش. ما رو رحم به پاس خاجر ما داریم میدویم. همون جا هم داریم تر به مغفرت و رحمت میکنیم. رب بغفر ورحم. داریم میدویم. ترس داریم هم داریم. از روز آخرت. اینک انت العزو الاکرم. اکرام تو میکنی عزیز تو میکنی بار الله عزیز ما نکنی که عزیز ما میکنه تو از ذر کرم بخششت به ما ندی که میده به بعد میره گو گو صفا میسته برای بار هفتم میبینه که بله صدای آبی داره شلسل آبی داره میاد بعد میاد خاکار کنار اون آب جم میکنی که زم زم جم بسننی همون جام جم خودمون که آبا نره دور نشه از این پای اسماعیل علیه السلام اینا یادوارها هست نو مژدگانی ها هست این چینین الله بندگانش رو احترام میکنه هاجر در زمانی که علیه الصلاه و السلام زمانی که ابراهیم خلیر رهاش میکنه خب آبی نبود غذایی هم نبود تک و تنهای خودش و بچه‌اش زن و بچه تپ شیلخار رها میکنه صدا میزنه هاجر ابراهیم الله و برکات خدا بهت گفته دستیور داده که من اینجا باشم سه بار تکرار میکنه میگه بهله تصویر الله که من تو را اینجا رها کنم ابراهیم که پشت میده میره الله قافله رو میفرسته و دیگه حاجر و اون فرزندش با اون قافله اون قافله اجازه هم میگیرن که اجازه است از این آب بنوشیم اجازه بهشون میده و بعد کم کم اسماعیل در اون قبیله بزرگ میشه حالا گفتن در اصل ابراهیم که عربی نبوده از سرزمین کنعان عراق اومده و, و میگن اسماعیل عرب عربه هست به خاطر اینکه اینجا با این عرب قحطان ازدواج میکنه و اینجا زبانش عربی میشه خب پس این یادواره سعیمون و وربه و عمره که تمام میشه تیغ رو برمی‌داریم از ذا سراص چنان چه سنت حلق را شروع می‌کنیم رحم الله المحلقین سه بار تکرار می‌کنه رحم کنه الله کسی که حلق بکنه یعنی تیغ بزنه سرش صحابه اول با مقصرین بعضی هاشون صحابه دستاشا که یعنی اون موها شک باشه سر جاش خودشون زیش می‌دیدن با بی‌مویی رسول الله صلی الله گفت رحم الله المحلقین بار دوم دیگه دوباره مردم تقاضا و خواهش کرده گفت رحم الله المحلقین باز بار چهارم گفت که وال والمقصرین انسان اصل برای اینه که بعد از اینکه که عمرشو انجام داد، توافشو و صفا و مروشو انجام داد، برای اینکه از احرام در بیاد و حلال بشه برش حمسرش و اون چیزایی که برش حرام بوده، حلال بشه، سنته که سرشو حلق بکنه اگر نتونست که دیگه حداقلش کوتاه کردن موها هست. با اون انسان از احرامش بیرون میاد تا روز هشتون که روز ترویه هست که انسان مکلفه سنت بره به سرزمین منا که خواهیم گفت تک تک جاها نوع عبادت و شعیره ای که الله قرار داده حساب باید توش فکر بزنه چرا من باید موهامو تراشم حکمت شیه قبل از اینکه موها ته راشیده بشه پاک بشه اون سرمون من خود اون تیغ مرا بیاد یاد پل صراط میندازه که سیق واریکتره از مناسکتر انسان این شعیره رو داره انجام میده این عبادت باید خودش آماده بکنه این تیغ داره میزنه سرت اون حلاق، اون آراجگری که داره مخاطر اصلاح میکنه این تیغه داره سرتو میدراشه همین تیغ باید تو روش بیستی، باید روش راه بری رو پول سرات با چی میخوای راه بری؟ همین توافته، همین سعیته، همین حجته که تو رو بر نوری میکنه بس پول سرات عبور میده وای به حال اون کسی که این تواف و سعی و حجش قبول نشه و نور نشه که او را بر روی اون تیغ که از تیغ تیسره اون پل صراط وای حال اون شخصی که به درگاه الهی قبول نشه و نوری نشه اون حجش که او را از اون پل امور عبور بده بیاد داشته باش سخت سخته یه چیز کمیا مو ولی دل میزنیم از اینکه تیغش بزنیم دل می‌زنیم عزیز برامون دنیاست چون دل به آخرت نبوسی اگر دل به آخرت می‌بوسین عزیز نبود اگر صحنه محشر پل صراط بیادمون بود نازکی پل سرات بیادمون بود برامون این مو عزیز نمیشد. نه اینکه که یک بار ده بار سرمون تیر میزدیم ولی که از پل سرات راحت لعده می شودیم اصلا باید بیاد اینها باشه تا بتونه اون عبادت را پاس بداره و حقش را عدا بکنه روز هشتم گفتیم دوباره ما غسل احرام میزنیم. حالا بعضی میگن که احرام درکت نماز داره اولا دست چیزی وارد نشده اون چیزی که ما داریم اینی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه شب خوابیده بودم در سرزمین ذوالحلیفه در مدینه شب خوابیده بودم بعد به من گفته شد که اینجا سرزمین مبارکیه درکت نماز بخون نماز اون سرزمین مبارک ذوالحلیفه نه نماز احرام نماز چی نماز اون سرزمین مبارک ولی اگر اونجا در اون سرزمین نباشین دیگه نماز بربا نیست یعنی اون نماز خاص اون سرزمین مبارکی که از اونجا احرام بسته میشه یعنی نماز متعلقه به چی به اون سرزمین مباره نبه اون احراممون اون چیزی که در سنت و در روایت های صحیح مده از رسول الله صلی الله علیه و سلم. ما غسلمون رو میزنیم احرامون رو میپوشیم صبح روز هشتم، هشتم از الحجه میریم به طرف سرزمین منا که صبح روز نهم حرکت میکنیم به طرف سرزمین عرفه در اونجا در سرزمین منا نماز پنج وقت سر وقتش خونده میشه ولی قص چون ما مسافریم اونجا قصر خونده میشه همونطور که اساسا نمازشون قصر خونده ولی سر وقتش الا در مزدلفه و در عرفه که نماز قصر رو جمع خونده میشه در عرفه ظهر با است قصر رو جمع میشه و در مزدلفه هم مغرب و عشا با هم قصر و جمع میشه ولی در مناک اومدیم دیگه سنت جناث در صحی دارین اینکه نمازها سر وقت خونده بشه اون اگر کسی هم جنب مشکلی نیست یعنی میتونه جنب بمنده ولی خب اون چیزی که از رسول الله صلی الله علیه و آله وارد شده اینکه نماز سر وقتش بخونه سنت وقتی که ما رفتیم سرزیمنه اصل بر اینه که ما نماز رو در مسجد خیف بخونیم اصل برینه نه در خیمه ها در مسجد خیف ما حاجت مسجد دوره نمیشه شاید بتونیم بریم ولی خب اون که جوانم توصیه میکنم بره ولی میشه در خیمه ها خونده یعنی مشکلی نیست مسجد خیف رسول الله صلی الله علیه و سلام چه دیواد ممکن حدیث رو بگم رسول الله صلی الله علیه و سلام در مسجد خیف که مسجد معروفیه تو سرزمین امانا میگه رسول الله صلی الله علیه و سلام صلا فی مسجد الخیف سبعونه سبعون نبیه هفته تا از پیانبران الهی اینجا نماز خوندن در سزمین منا در مصد خیف من هم موسی صلی عليه علیه وسلم از اونها موسی علیه السلام که انی انظر الیه. مثل مثلی که درم نمیبینمش یعنی الان مثل که موسی علیه السلام جلو چشامه و علیه عباعتانی قطوانیتان و هو محرم و بردوشش و کمرش دوتا عبايه سفید رنگه مثلی پارچه احلامی که ما میکوشیم و هوا محرمون احرام خوشه ده ما اینجا میگه می بینه الله رسول الله صلی الله علیه و آله داره میونست اون صحنه رو آورده جلاله و تشوی رسول الله صلی الله علیه و میگه من اینجا موسی را الله جلاله چشم آورده که اینجا اینطوری احرام بسه علی بعیر بر روی شطوره من ابله شنوئه مخطوم خطامی لیف له ضفرتاه اون شتره بینی هاش بسته شده و موسی علیه السلام بر اون سواره هست و احرام بسه خب این جایگاه مقامه مقام منا و اون مسجد خیفش و اون پیامبرانی که افتادنی که اونجا ایستادن به پاس اون پیامبران بیاد یاد اون یادواره ابراهیمی که این عبادت و شعیره این چنین به خاطر او زنده شد رفتن به منا نشسن در بنا و اون نماز را اونجا خوندن ادا کردن همچون ابراهیم و افتاد پیامبر قبل از رسول الله صلی الله علیه و اونجا ایستادن که رسول الله میگه الله به من داره نشون میده نمایش میده کسانی که اینجا ایستادن از پیامبران از جمله میگه موسی دارم ریوش شد اینجا این مقامه تو جایی اومدی جای پای کی داری میذاری؟ تو جای پای ابراهیم میذاری؟ تو جای پای موسی و عیسی میزاری؟ تو جای پای محمد مصطفی صلی صلّا الله عليه و داری میزاری؟ این جا جای کمی نیستا قدرش بدون تو داری جای قدم های رسول الله صلّا الله و داری قدم برمیداری تا تا این جایی که داری می‌می‌رسی به حرام برمی‌گردی اینجا رسول الله الله و قدم برداشته یادش رو زنده کن. ذکر الله را بگو داری میری بیایی و اذکر الله فی ایام محدودات روزهای اندکی والله چند روزی برمیگنی معلوم نیست که دوباره فرصت بشه بیای نه. سنت بر ماهایی که احرام میپوشیم قربانی که نداریم ما ما حدیه داریم فرق ما هدیه ما با قربانی در اینه که قربانی ما در سرزمین خود ما برای زن بچه مونه حدیه ما هدیه هست به خانه خداست هدیه ما اینجاست یعنی ما اون قربانی که اینجا انجام میدیم یعنی اون سر حیوانی که برای ما زده میشه ولی هرچنکه ما خودمون بینیابیت از ما زده میشه ما وکالت دادیم اون حیوانی که بینیابیت از ما سرزده میشه در اینجا هدیه، هدیه برای اهل مکه است دیگه اون قربانی نیست که احکام خاص خودش داره در سرزده هرچنکه از لحاظ شرعی ما مکلفیم که هرچنکه واجب نیست سنت. که شخص قبل از اینکه زل حج بیاد به خاطر احرامی که بعدن میپوشه روز هشتو اصلاحات خودش رو انجام بده از موی زیر بغل از غیر از ناخن چون زل حج که شروع شد دیگه دیگه کسی که قربانی داره یا حدی داره دیگه اجازه نداره هرچند گفتم حرام نیست ولی که سنته که از ناخنش نچینه و موهاش کوتاه نکنه اینها سنت های حدی و قربانی هستن حالا رسیدیم به به باشکوه ترین جایگاه بزرگترین روز دنیا روزی بزرگتر از اون نزد الله محبوبتر و بزرگتر نیست روز عرفه اصلا از وصف عرفه آدم عاجز میمونه که چه بگه در مورد عرفه کافیه که الله جلد و علا به افتخار میبرزه نسبت به این بندگانی که در اون سرزمین ایستادنال و احادیثش رو خواهیم کن الحج و اشفر و معلومات حج یکی از روزهاش روز عرفه است إن عدة شهور عند الله 12 عشر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم روز عرفدار از مهيا حرام وقع شده روز عرفه روزي ك الله جل وعلا بنوار أيام معلومات أشهر معلومات يقد مكونه ليشهد منافع لهم يذكر اسم الله في أيام معلومات روز هاي معلومية روز عرفاء مشخصة نهوم زل حجهس الله جل وعلا بده روز زل حجه قسم يخرج ويكاس أن روز ها روز عرفاس ذو الفجر واليال العاشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفرميان ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرى من خير يعمله في عشر الأضحى تهروز هذه الحجة وكذلك قبل ذيك بعرفه برسي إن دهروز توعيد روزي قربان كم نمجمارات سنجزني روز دهوم كي روز عيد مولا ما من عمل هيك عملي صداقه ذكر توافه هر عملي دار دهروز ما من عمل أزكى عند الله عملي مقبول نزال الله نزجلب علىه ولا لا اعظم اجر و قداشش هم بیشتر نیست من خیر از عمل صالح خیری که یعملو في عشر اضحا بنسبت اون عملی که در اون ده روز زلحجه انجام میشه هیچ عملی في عشر الاضحا ده روزه که برای عید قربان گذاشته شده ده روز زلحجه هیچ عملی پرفزیده تر است عمل در این روزها نیست و در روایتی ما من عمل صالح احبو الى الله هیچ عمل صالحی نیست که محبوبتر از الله باشه از عمل روز. یعنی الله جل وعلا نگاه خاص در اعمال ما خصوصا در این ده روز گفت رسول الله وللجهاد في سبيل الله گفت حتى جهاد جهاد اصلا بره کشته بشه چند بار تکرار میکنه بعد رسول الله ص میگه الا رجل خرج یا وماله فلم يرجع من ذلك بشيء شخص ماله تنش بره به جهاد نه مالش بر برگرده نه ترش بر برگرده بله این جایگاهش مقامش نزد الله بالاتر از اون کسی که در این ده روز عمل صالحی انجام بده روز عرفه روزیه که دین بر رسول الله صلی الله علیه و آله کامل میشه. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم دین کامل میشه. رسول الله صلی الله علیه و آله در خطبه وداعش رو میگن و هایی را رو میکنن. روز عرفه سنته بر کسانی که در حج نیستن روزه میگیرن. در حج نیستن. اونایی که در حجن روز عیدشونه، اجازه ندارن که روزه میگیرن. و الله جل و علا پاداش بزرگی برای اونهایی که روزی میگیرن در این روز قرار داده و کفاره گناهان ما قبل و ما بعدشون بشه این روزه روز عرفه هست چنانچه در حدیث سر می و سن الماضیه و سن القابله اکسوال گذشته و آینده الله با اون روزه کفاره قرار نگفت ولی برای حاجیان نیست برای کسانی که حج نیمدن و رسول الله صلی الله علیه و از این روزها از روز عرفه روز عید قربان است اون سه روز که سنگ جمرا زده میشه به عنوان عید یاد میکنه یوم عرفه و یوم النحر و ایامنا عیدنا اهل الاسلام ناس حدیث یوم عرفه و یوم النحر روز عرفه روز قربانی و ایام منا روز منا عید اهل الاسلام این 5 تا روز عید ما مسلمان هست چنانچه در سونه نبی داود حالا بریم به خود عرفه و اون جایگاهی که الله جل و علا توبه ادم حوا رو میفرستید فتلقاها عند ربك کلمات فتابه بعضی میگن اون کوهی که یک ستونی روش قرار داده شده میگن که آدم حوا اینجا با هم رسیدن به روی زمین این کارها افتن و زحمت کشیدن روی کوه ایستادن نه فضیلتی داره نه ثوابی داره نه هم سنت اینو بیاد داشته باشی رسول الله ص ص این کار نکرد رسول ص کجا ایستادن؟ اون مسجدی که معروفه در خارج از حتی حدود عرفه ایستادن خارج از حدود عرفه خود بخوندن و بعد اومدن نماز رو در حدود عرفه خوندن و وارد نشده که نه صحابه و نه از رسول الله که برن روی اون کوهی که معروفه وجبی بیستن و ایستاده در کجا فضیلتی داشته باشه هیچ فضیلتی نداره هیچ ثوابی نداره و بلکه رفتن و خصه کردن خود شاید سبب بشه که انسان در خرافات و در بدعت و شاید در گناه هم بیفته تو وقت خود خودت زحمت میکنی که بری خصه بشی روی کوه بییسی این همه زحمت بعد غافل از اینکه این روز روز عرفه از سرزمین سرزمین عرفات تو برای عرفش اومدی عرفه یعنی چی عرفه یعنی چی این عرفه چه جایگاهی الله جل و علا داره اولش اینکه رسول الله صلی الله علیه و خیر الدعاء دعاء دعا يوم عرفه خیر الدعاء بهترین دعایی که تو در عمرت می‌کنی بهترین دعا دعای روز عرفه است دعایی که ردخور نداره دعایی که ردخور نداره تو روز عرفه است بخاطر همین گفتیم وقتی که روز عرفه هم در روز جمعه بیفته دو تا فضلات گیرمون بیاد اون وقت اجابت دعایی که در روز جمعه است و اون روز عرفه ای که یک بار در سال روز جمعه هر هفته است ولی عرفه یک باره دعایی که در عرفه است اجابت میشه دعایی است که نظر الله جل و علا ردخور نداره و بهترین دعاها هست رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماین ما من یوم اکثر من ان یعتق الله و فیه من النار من یوم عرفه هیچ روزی نیست که الله بندگانی رو از جهنم آزاد بکنه مثل روز عرفه چون اومدن برای توبه کردن بنده بندگی اینجا اومده که بر بگرده همچون نوزادی که به دنیا آمده اومده بخاطر همی الله <سؤال> حم جل على بدون چونه چرا گناهان هر شخص رو میبخشه مدام که حق الناس نباشه حق خودشو میبخشه الله جل وعلا حق الناس بخشیده نمیشه بگر با توبه نباشه ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبد من النار من يوم عرفه و انه ليجن الله اكبر شرفی روز شرف این جایگاه الله میاد به آسمان دنیا و به آسمان عرفه میشه نزيك بشبكي کل جهانیان؟ نه فقط به اهل عرفه ان روز خاص اهل عرفاس این جایگاه وایگاه خاص استالا و این نو چگونه شجونه ما مشرافی رحمان الله سؤال میشه چگونه الله نازک میشه الله جل و این ما لا این ما منمیتونم ازش بکنم لا از سؤالو عماه فعال این الله جل و در زن خود منمیتونم تصور بکنم اجازه ندارم فلا تظربو للا همثال اجازه نداری در زن خودت تصور کن چطور الله میاد؟ اون چیزی که رسول الله صلی الله علیه و آله بیاد و بی فرمایان با تسلیم باشی و در مقابلش نبود در زن خودش تصور بکنی الله خالق تو مخلوقی نبود با خود قیاس بگیری چطور میاد پایی پرنداس چیه؟ بال داره پله گذاشه نه هیچ کدوم چون تو مخلوقی تو محتاجی که با پله بری بالا و بی پای نه ولی الله جللا علی خیر الله را کسی ندیده و مثل الله کسی نیست نمیتونی دستورش رو ولیکن حرف رسول الله صلی الله علیه و که میفرماین الله نزیک اهل عرب میشه و اینه لیدنو حقیقت داره واقعیت داره با و باید در مقابلش تسلیم باشیم. ثم و اینه لیدنو الله نزدیک میشه نکنید فضیلت های روز عرفات است بهترین دعای دعا روز عرفات است روز عرف روزیه که بیشترین انسان ها از جهنم رها میابن یعنی نجات می عذاب نمی بینن الله ما و شما پدران و مادرانمون رو دوست رفیق و خانواده و اقواممون رو جز اون دست اشخاص قرار بدن که جهنمی آتشی از اون جهنم به تنشون نخوره و جز کسانی باشیم که از جهنم نجات بیابیم و رها میابیم این روز رهایی روز از جهنمه روزی که الله نزدیک میشه به اهل عرفه ثم يباهي بهم الملائکه یباهی بهم یباهی بهم چیه؟ مباهات, مباهات افتخاره <سؤال> الله میباله بندگانش ای فرشتگان میبالن به این بندگانم که به تمعن مردن به تمع بخششه مال مدن برای من, مدن؟, من مدن الله مباهات میکنه افتخار میکنه به بندگان فیاقول ما اراد هؤلاء چی میخوان چی میخوان که بدم بهشون داس و نداره این روز عرفه است این شرف این روزه در روایت دیگر داریم که رسول الله صلی علیه و سر به ان الله یباهی عرفات اهل سبا افتخار میکنه الله جل و علیه به تمامی اهل آسمان ها اینها هستن بندگان من اینها هستن که برای من آمدن اینها هستن که برای من جم شدن اینجا هست که رسول الله صلی علیه میگه الحج و عرفه حج عرفه است حج اینجاست به هیچ چیزی مشغول نشو موبایل دست نگیر ای کاش که اونجا یعنی حتی سخنرانی هم نمیشود اونجا حرفی هم نمیبود بود الا جز ها کردن دادن حتی اگر اون دعا فقط تکرار باشه اللهم ارحم لي وقف اللهم اغفر لی و اگر نمیتون دعا بکنی حداقل همین جملهش بهترین روزه. با شرف روزه روز نس الله تعالی روز عرفه است. معلوم نیست که آیا دولت توفیقش پیدا بکنی اونجا بیستی یا نه. این روز رو از دست نده. از الله بخواه که تو جزء اون 10 اشخاص باشی که از جهنم آزاد میشن و عذابی دید الله فضل عرفه بیش از اینه ولی خب دیگه قدر افتام میکنه چند تا حدیثی که وارد شده. از عرفه غروب خورشید که میشه میریم به طرف مزلفه و صحنه مزدلفه اون شب که میرسه شکوه خاصی خودش داره با اون لباسی سفیدی که انسان بینه روی کوها و دشتا همه خلق اونجا جمع شدن و سنت این که انسان وقتی که رسید به اون سرزمین مظلفه نماز رو بخونه مغربای شب بعد به خواب بکنه تا اینکه دم صبح دست به دعا برداره داره چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم دست به دعا بر می داشت انسان دست به دعا بر داره قبل از اینکه خورشید طلوع بکنه نماز صبح را میخونه دعا میکنه تا شفق بزنه و با طلوع خورشید حرکت میکنه به طرف تکبیر با, با اكبر الله اکبر الله اکبر این ده روزه الحج ده روز تکبیره فاتکر الله عند المشعر الحرام این مشعر حرامه مزلفه است فاتکر الله کذیکر کم آباء کم وشد از عسبدرانه تو بیشتری الله باشی دنیا رو ول بکنید اینجا میچسبید با الله الله اکبر الله اکبر زیاد بگی تکبیر با تکبیر از مزلفه میریم به طرف سنگ جمرات جمره کبره اون شیطان بزرگ اون شیاطینی که ابراهیم رو وسوسه بس بس میکردن که قربانی نکنه اسماعیل رو سر نزنه چنانچه در روایت ها اومده ابراهیم علیه السلام الله امتحانش میکنه چنانچه در قرآن یاد میکنه از سخنان ابراهیم یا بني اني ارى في المنام اني ای فرزندم اسماعیل الله من ذا سورد که تو را قربانی کنم فانظر ماذا ترا؟ چی میبینی ای فرزندم قالا یا امر. این بنده این فرزند درس ناکه درس تربیت ها این فرزند با نماز این فرزند با طاعت و عبادت بزرگ شده این پدر پیغمبری با بوده بهش میگفته این نماز طاعت و عبادت فرزندی که درست تربیت شده به پدرش میگه نه سرم نزن میگه نه پدر افعل ما و عمر اون چیزی که بهش دستید دادی انجام بده پدر سرش رو میذاره پدر چا خور رو بیا سرم رو بزن شخصی که سرش نمی‌بوره شیطان وسوسه‌اش بس می‌کنه، بر برمی‌کنه در شیطان. این سنگ زدن تو به شیطان، سنگ زدن به خواصه‌ی نفسته، هوای نفسته، اون نفس امارته، اون شیطانی که تو رو میگه پول ربا رو بردار، نمیدونم این سود بانکی 4 درصد این، نمیدونم وام مسکنه این، نمیدونم ف... وام فلانیه، وام ازدواج، با هزار تا بهانه تو رو می‌خوان آلوده بکنم به به وام و به ربا و ربایی که الله جل و علا در قرآن میگه به وبحرب من الله، الله میگه اخواتر آماده بکنید به جنگ با ما. یعنی جنگ با ما. صبرت نهایت تلاششو بکنه از اینکه این, این خواسته ها و این ها سبب نشه که به خاطر دنیا خودش رو ذلیل بکنه دنیا جای ماندگاری نیست جای خوشی نیست خواسته های نفس خودت اون حاجتا و نیاز خودت رو سنگش بزن اون خوابت که سبب میشه که از نماد غافل بشی حالا هر کسی به جای خودش هر گناه معصیتی هست یاد بگیریم از ابراهیم چطور تسلیم امر الهی بود کی میتونه رو سر بذاره الله نگوری چه خاصی سختی از ابراهیم میکنه ولی که ابراهیم مسلمانه مسلمان واقعی است تسلیم امر الهیه الله تو حق یعنی اگر الان مثلا به فرض یک شخص عادی از امثال خودمون انتخاب میشد به این جایگاه فوراً الله رضی الله چرا من باید این کارو بکنم چرا من باید این کارو بکنم حکمتش چیه ولی ابراهیم علیه السلام دنبال این نیست میدونه الله جل و علا جزء به حکمت جز به نیکی دستور نمیده محاله که امر الهی خیریتی توش نباشه گمانت با الله جل و علا نیک باشه اون چیزی که الله از تو خواسته به خیریت خودته الله زجرت نمیخواد شکنجهت نمیخواد الله خوبی تو رو میخواد الله را خوب ببین تا الله با تو خوب باشه رسول الله صلی الله علیه و سلام میفرمايان والله عند حسن ظن عبده به الله در گمان اینی اگر خوب گمان کردی که من اگر مبتلا شدم زانو درد دارم سر درد دارم الله حکمتی داده در این اگر ازدواج کردم ناموفق بود اگر بچه من زندان افتاده اگر تصادف کردم فلان شد حتما حکمتی بوده در این تصادفه حتما در اون حالا نمیدونه مقصر فلان دنبال مقصر ن간다 حکمتی بوده که پدر مادر فلان جا باشن تو ایرانی باشی تو از فلان منطقه باشی وقتی که تسلیم امر الهی نشیم چی میشه اون دختر تنفروشی میکنه به بهانه چی من پدرم که معتاد پدرم به خرجیمو نمیده اون زنه هم خودش هم نمیدونه نباکنید الله را در گمان نیک ندیدن چه بلاهایی سر مادر میاره چرا شخص معتاد میشه چرا میره به طرف مواد چرا میره به طرف مشروب چون کسی رو برای خودش نمینه که دستش رو بگیره یا شخص عشقی خورده رفته رو به اعتیاد آورده یا نمیدونم کسی دست پدر مادر دستش نگرفتن خواسته هاش برای کنار رو مشروورد دو سه رفیق گولش دادن میگه پدر مادر به چی هم چکارم من پدر مادر که به دادم نرسیدن بذار دو سه رفیق بذار باشم کیفا بکنم وقتی که الله رو در گمان نیک ندیدی حتما حکمتیا از پدر مادرم نمیدن حتما اون یه چیزی میدونن وقتی گمانت نیک شد تو تسلیم میشی و در این گمان نیکت نسبت به الله جل و علا نباشه سوء و خرافات باشه اونجا هست که بد بیاری و بدبختی بخاری میاد پت میزنه میگه صبر اومد. چی اومد صبر؟ از کجا اومد؟ چی صبر اومد؟ خرافات از کجا اومد؟ برای چی صبر اومد؟ نه، حتماً من خودم را پیش اومده. می‌خوام سوار تندرو بشم، یکی عضه می‌زنه. میگه نه نه نه نه، سوار چی خرق می‌شی. بر بگردیم بر می‌گردم. صبر چی اومد؟ این دین کیه؟ از زرتشت اومد برای تو؟ یا از هندو اومد؟ کلید به هم نزن، دعوا میشه. نمیدونم فلاکس غری رو به طرف کسی نکن، فنام میشه. دیبدا چهارشنبه ناخونات نتی پس کجا از چه دینی از چه شریعتی؟ ما تسلیم امر الله واد باشیم نه تسلیم خرافات چون فلان حادثه رخ داد شب چهارشنبه ناخونات شید فلان حادثه رخ داد یا کلید به بمزنه دروازه بر این نیست که که اینها سبب شدند و اینها سبب نه الله ادنا لكم هر چیزی چه اون عبادت قلبی باشه از اعتقاد و چه از اون عمل هر چیزی که اساسی در شریعت نداشته باشه تو در مقابلش مسئولی به روز قیامت حساب بشید. اعتقادات خودمون رو همونطور که اعمال خودمون رو در پی اصلاحشیم اعتقادات خودمون رو درست بکنیم خصوصا در اون اعتقادی که به الله جل و علا داریم. اعتقادمون به با الله باشه و به با اون چیزهایی که به همون گفته نه اون چیزهای من در آوردی این و اون این درس ابراهیم علیه و السلام در سرزمین منا و سنگ زدن به اون هوای نفسش سنگ زدن به اون شیطان اون کسی که ورق میزنه زندگی من و تو اللهه و الله میدونه زندگی من و تو رو چطور ورق بزنه چی به مسلحت من و تو هست و نیست؟ الله مشخص میکنه که چی به درد ما میخوره از ما بخواد که انجام بدیم قربانی بکنیم نمیدونم زکات بدیم نمیدونم حج انجام بدیم الله میدونه که این عبادت و این طاعت به نفع ما هست و خوبه که ما انجام بدیم خب سنگ جمرات زدیم سنت که در اون روز بریم طواف افاظه سنت واجب نیست شما میتونید ایام تشریق هم یعنی روز 11ام 12ام 13 هم, هم برید رو بکنید حج بله خب اون روزی که رسول الله رفتن دوبری بهتره جمره کبرا رو میزنی جمره کبرا که زدی از مزلفه که کومریم به طرف سنگ جمرات جمره کبرا رو میزنی بعد سنت که اونجا دعا بشه رو به قبله بعد از اونجا بریم به تواف و سعی صفاء مربه و بعد از اون حلق اگر بعد از سنگ جمرات ما حلق انجام بدیم مشکلی نیست یعنی تقدیم و تاخیر بین سنگ جمرات تواف فازه و حلق قربانی چهار تا چیزه که باید انجام بشه که با اون ما حلال بشیم یعنی چیزا بر ما حلال بشه الا همبستری که بعد از انجام همه اونها هست یعنی بعد اون چهار تا چیز را همه انجام داده باشیم تا اینکه همه چیز بر ما حلال بشه ما میتونیم از احرام در بیایم بعد از سنگ جمرات با تراشیدن مو ما سنگ جمرات زدیم میتونیم موهامونو تیغ بزنیم یا بتراشیم و از احرام بیرون بیایم ولی اولاتر که ما بریم توافع فازه رو بکنیم چنانتی راست داستان هم توافع فازه رو انجام دادن و قربانی رو هم انجام دادن و بعد آخر حلقشون انجام دادن اجا قربانی ما خودمون انجام نمیدیم به از ما انجام داده میشه خب این قلاصه و گذری بر اعمال حج و اون هایی که در این روزها هست و اون اعمالی که ما انجام میدیم و مهمترین روزی که ما حزینه کردیم براش از وقت جانم غافل ازش نشیم و روزهای دیگرمونم ده روز زلحجه که رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند، بهترین عمل صالح در این ده روز ازش هم غافل نشیم حسن از اینکه وقتمون در حرم باشه نه در منزل و در کاشانه و در هتل و این عبادت و ای که الله دوست داره و محبوب به درگاهش از تواف، از ذکر، از یاد الله جل و علا هر عبادتی که تو انجام میدی، الله دوست داره که به از خاص انجام بدی سعی بکنیم این روزها وقتمون را با اون چیزی که الله دوست داره، اون روزها رو را بگذارونیم و همچنون پیانبرانی که در این سرزمین اومدن و به پاس شکر و سپاس الله اصفاده همچون اونها بیستیم، شکر و سپاس باشیم و در این سرزمین نه تنها برای اینکه گناهانمون کفاره بشه بیسیم بلکه برای اینکه انسان سابق گذشته نشیم اگر اشتباهاتی از سر زده دیگه توبه بکنیم نه اون توبه برادران یوسف توبه برادران یوسف چی بود برادران یوسف گفتند تو چاش بندازیم و بعد از اون صالح بشیم حالا یک کاش ما هم مثل برادران صالح میشدیم برادران یوسف میشدیم میگفتیم حالا حجبیم بعد خوب میشیم ما بعدش هم خوب نمیشیم خیلی میاد حج عرفه می ایستن به تمن اینکه الله رو ببخشه و بیا مرزه گردن از حج بدتر میشن نه نمازش سر وقتشه نه روزشه نه پای بندی به دین داره نه حلال حرامش میدونه برمیگرده از حجت اومدی اینجا ایستادی از الله یاری به طلب برای اینکه بنده حقیقی الله باشه و یاری بکنه و اونجا هم برگشتی تلاش بکن برای اینکه بندی حقیقی الله باشه ایستادن در این سرزمین برای اینه که بازگشتت برگشتت به سوی اون بنده مطلوب الهی باشه اون بنده حقیقی یا الله جلد و اعلا باشه هدفمون اینه که بر بگردیم بهتر از قبل نه بدتر از قبل نه که اومدیم اینجا ایستادیم دیگونهانو بخشیده شد تمام شد رفت نه اینجا زندگیت شروع میشه اینجا تولدت شروع میشه اینجا هستی نوزادی به دنیا میایی در سه زمین عرفه. الله گناهانت رو پاک میکنه. از تو می زدائه. الان از تو میخواد ببیند. چطور بشی؟ پس از عرفت مهمه که چی بشی؟ سبحانکاللہ بحمده که سبحانکاللہ بحمده و صلی اللہ علیه محمد و علیه محمد.